این کتابه کامل فی تاریخ ابن الاسیر ما ابن اسیر کامل معروف جلد سوم طبقه این چاپی که بنده دارم در صفحه 54 از صفحه 53 ذکر ال علی به ولایت العهد یعنی عنوان اینه اگر کسی تو چاپای مختلف خاص ببینه تو این عنوان اونجایی که معاویه تصمیم میگیره یزید رو به عنوان ولیعت معرفی کند و از مردم برای یزید بیعت بگیره قضایه رو نقل میکنه تا میرسه به اینجا میگه که مغیره رو فرستاد کوفه. گفت مغیره میدونی که باید یک کاری بکنی مردم یزید رو قبول کنن پادشاهی به وزیرش گفت میخوام دای خدایی بکنم وزیر گفت نمیشه گفت کاری بکن که بشود گفت پس اجازه بده امکانات به من بده اختیار تام بده بگذار من یک سلسله کارها رو تو جامعه انجام بدم چه کاری؟ شستشوی مغزی بدم فکرها رو بشویم اندیشمندانی که میتوانند به جامعه آگاهی لازم بدن اونها رو تحت عنوان امول و مرتجب و کهنه کراب و گراب و چنین و چنان کنار بزنم هر حرف باطل آلوده کننده ای رو تحت عنوان روشنفکری و اندیشمندی و, غیرت و از اذهان ایجاد کنم راه ها رو برم تا ببینم چه میشه رفت و رفت و رفت هر چند وقتی هم خبر میداد یه روز اومد به قربان حالا اگه میخوای بگی خدا وقتش هست گفت چطور گویم رفتم تو بیابونیدم دو نفر با هم دعوا میکنن گفتم دعواتون سر چیه گو شما قضاوت کن بین حق با من هست یا نه گفت چیه گو آقا من یه نعل اسبی پیدا کردم خب نعل اسب دارم اسب می‌خارم دلم میخواد اسبم رو بیارم تو این بیابون بچره اگه اسبم بیارم تو این بیابون در میره دارم میختبیله میکوبم می‌کوبم که اسبم رو بتونم به این میخ بکوبم این آقا نمیذاره من میخ تبیله بکوبم به دومی گو چرا ما میشی گو شما قضاوت کن حق با منه یا نه من جوان مجردی تصمیم دارم ازدواج کنم بچه دار میشم زن و بچه من مسکن میخوام. من که داخل محدوده قدرت ندارم زمین بخرم خونه بسازم اینجا بیابون کسی کاری به من نداره میام. یه ای خونه اینجا میسازم بچه ها اینجا راحت باشن. این نمیذاره من میختبیله ب این میخواد اینجا اسبش رو ببنده. لگت میزنه بچه های من رو اذیت میکنن. لذانه میذارم میختبیه به اومد گفت مردم سری هیچ به جان هم افتادن. حالا میخواید دای خدایی بکنی بکن. مردم سری هیچ به جان هم افتادن. یزید کاری بکنه یزید و قبول کنن ای وای کدوم بردگی در جامعه اسلام کدوم ذلت در تاریخ اسلام کدوم حقارت در تاریخ قرآن از این پستر، ذلیلتر حقیرتر که پیغمبر با اون آزادگی وقتی مبعوث می شود علی و زهراب و امام حسن و امام حسین تا سنه پنجاب و و شست هجری مردم دیدن شست سال از هجرت پیغمبر گذشته سیزده سالم به قبل از هجرت هفتاد وسه سال در جهی هفتاد و سه سال با جامعه کاری کردند که به یزید به یزید بتونه چاندید بشه تا چه برسه ببینیم رعی میاره یا نمیاره ای که یزید رو عنوان کاندیدای ولایت عهدی خلافت قبول می کند محکوم به فناست که ما حسین میگه گز بلیت الامه به را این مثل یزید و اسلام از سلام فتح اسلام بخونید اسلام چی؟ قرآن چی؟ که یزید کاندید بشه شال یزید کاندید کرده باید جبسازی بشه که یزید رای بیاره بپذیرنش چه میکنه میگه موغیره برو کوفه هر چی میخوای در اختیارت میذارم پول خیلی معذرت میخوام منو ببخشید عوامل ارزای شهوت جوانان و و و هر چی میخوای در اختیارته مردم یه کاری بکن موغیره رفت کوفه جلد سه کامل ابن اسمل سنیاسا من به شما گفتم هر چی میخونم مخصوص نیا میخونم شیعه یکی ناره اگه بخوایم بگیم که نوشته های شیعه رو بخونیم با تا سر گریه بکنیم امروز یکی از آقایون از دانشگاه تهران به من زنگ زد از دانشکده پزشکی گفت صبح تو جلسه شما بودم اومدم کلاس آقا تو چیکار کردی من نمیتونم درس بدم من عین نشستم دارم گریه میکنم چون من تا حالا نمیدونستم شیعه اینقدر مظلومه من نمیتونم دیگه کلاس بدارم گفتم نه شما به خاطر امام حسین کلاس تو برو کارت هم انجام بده ولی در انجام مسئولیت خود هم انجام وظیفه کن و کارت رو انجام بده اگه بخوایم از شیعه برای نقل کنیم که باقا هم با تا صبح گریه بکنید حالا همین مقداری که تا سنیشم نوشته دارم عرضون کنم مغیره از کوفه نوشت برای معابیه که معابیه بعضی ها خیلی زدود دینشونو فروختن راحت با یه مقدار پول با یه مقدار وعده با یه مقدار اما بعضی یه مقداری سخت گیر بودن که اینها رو ما چه بکنیم؟ معاویه دستور داد که به اونها مقدار بیشتری بدن اونها قبول کردن پسر مغیره موسابن مغیره است مغیره پسرش موسا رو با ایس چهار نفری که یه مقدار سرشون به تنشون می‌ارزی، در مقابل یزید معترض بودن ولی با پول بیشتر اینا خریده بود اینها رو چه کرد؟ و جعل علیهم ابنه موسابن المغیره و قدمه الا معاویه فزیینو لهو بیعت یزید و دعوها ال موسیب نمو مغیره اینا رو برداشت اومد رفت کوفه بیاد پیش معاویه سرسفردگی این درم بگه ببین من اینقدر موفق شدم اینا رو حاضر کردم سری ببینید فقال معاویه معاویه گفت لا تقجلو به اظهار حاضا و کنو علا رعی کم سمقال سم موسا به کمش اشترا ابو کمنها اولا دینهم هم به کم چه مقدار اشترا خرید ابو بابات، من اولائه از این دست دینه هم دینشون رو به چند خرید قاله به سلاسین الفا سی هزار دینار قاله لقدهان هم دینه چقدر اینا دینشون ارزش بود ما خیال میکردیم بیشتر میارزه ما بیشترش هم آماده کرده بودیم خودمونو خب آقا یک امیر یزع و اسره هم ول اقلال اللتی اونهایی که به گردنش انداختن یک امیر میگه چقدر میخوان بخرشون با پول با وعده نه با آزادی شهوترانی خوشش میاد چقدر آدم خوبی است منو آزاد گذاشته هر شهوترانی بخوامنجا این داره تو رو اسیر میکنه نه اینکه تو رو آزاد کنه آزاد باش و متوجه باش